بسم الله الرحمن الرحیم بنامه خداوندی بی اندازه مکربان نهایت باره قسم به با آسمانی دارای برج ها و قسم به روزی که وعده شده و قسم به گواه و چیزی که مشاهده می شود حلاک شدند اهل خندق آتش دارای هیزوم بی هنگامی که در کنار آن نشسته بودند و آنچه را بر مسلمانان می کردند، با خونسردی مشاهده می نمودند. از آنها انتقام نمی گرفتند جد این که با خداوند صاحب قدرت مانی و ستوده ایمان آورده بودند، ذاتی که پادشاهی آسمانها و زمین از آن اوست و خدا بر هر چیز گواه است، بیگمان آنانی که مردان مسلمان و زنان مسلمان را زجر دادند و توبه نکردند برای ایشان عذاب دوزخ است و برایشان برای عذاب آتش سوزان است و بیگمان آنانی که ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام دادند برای ایشان باغ‌هایی است که در زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد و این است پیروزی بزرگ حقا که گرفتار کردن پروردگاری تو چون کسی را گرفتار کند شدید است واقعا هم اوست که از اول میافریند و زندگی را اعاده می کند و اوست آموزگار و بسیار دوست دارنده صاحب عرش با شکوه و جلال هرچی را بخواهد انجام داده نیست آیا برای داستان لشکرها آمده است لشکرهای فرعون و سمود؟ ولی با این هم کافران در تکذیبند یعنی کارشان تکذیب است و خداوند از عقبشان بر آنها احاطه دارد نه چنان است که کافران میپندارند بلکه این قرآن است مجید یعنی با شکوه و با عظمت و در لوح محفوظ قرار دارد